رخدار نادرستی نظری های هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی با نام و یاد یگان آفیدگار هستی بخش بارز سلام و احترام، خدمت شنوندگان گرامی، همراهان صدای و امید و به خصوص برنامه رخداد قسمت دهم ده این برنامه رو در خدمت شما هستیم. در قسمت نهم هم یک وجوه منفی و اثر منفی که نظریه داروین داشته دو قسمت رو بنده ارز و برنامه تموم شد. اون هم میشه گفت بعد از اون مسئله حزب نازی و حزب سوسیال ناسیونال توی آلمان و اون فجای قرنبیستوم، یه دیگرانیه، اثر منفی دیگه هم که داره رقابت اقتصاد آزاد و به طور کلی نظام سرمایداری افسار گسیخت است و تبدیل جامعه بشری به قطبهای غنی و فقیر و در نتیجه قوی و ضعیف نیست محصول استفاده نادرست از نظریه داروین و تقلید از مش طبیعت و به حوزه انسانی است جناباییه یلا اینطور می‌بینیم که اصلاً دقیقاً منطقه نظام سرمایه‌داری هم همینه بله بله. که دقیقاً هر کسی که می‌تونه هر کسی که در واقع اون چیزی که داره می‌تونه بر جلوی و حتی خود اقتصاد خودش رو کنترل چه جوری کنترل می‌کنه دقیقاً همین خود کنترلی بر هم از همون داروین هستش که توی این خود کنترلی یک سری افراد پیدا هم... می‌شن که میان مردمم میچاپن حالا مثلا یک سری افراد عظمتی که داره ما قائل به سوسیالیسم و کمونیسم نیست دقیقاً ام... اما این شکل از سرمایه‌داری رو هم نفی نمی‌کنه بله ولی خب مود هستش که با اخلاق نیست بله مود هستش که توی دنیا هر کسی که مخالف سرمایه‌داری لزوما میگه فلانی چپ هستش مثلا خصوصا تو اون دوره ای که اصلا ما مثلا زمان چارلی چاپلین شما ببینی بنده خدا هیچ ادعای مارکسیستی هم نداشته فقط تو یه سری از فیلم فیلم‌هاش مثلا دفاع و حمایت از طبقات کارگر و طبقات ضعیف و طبقات مستضعف رو داشته به اتهام داشتن افکار مارکسیستی از خود امریکا اخراجش میکنن و بیچاره چندین سال توی لندن کارتون خواب بوده و این رو ما میبینیم رضا همین که عرض کردم این نظام خصوصا نظام سرمایهداری قبل از دور کینزیک اصلا یک نظام داری افسار گسیخته بوده خصوصا تو شما تو قرن 19 به یک لیبرال به یک دار می میگفتی که مثلا توی قرن 20 قرار مثلا به یک کارگر بیمه داده بشه مثلا میخندید بهتون کارگر بیمه داره یا وسی کارگر مثلا فقط 8 ساعت میتونی ازش کار بکشی مثلا واقعا یه سری افرادی بودن که خصوصا تو کارخانه‌های انگلستان دور قرن 19 وایل قرن که اصلا له می‌شدن یا میگفت توی چرخ کارخونه ها واقعا واقعا له میشدند و از بین میرفتند. آیا یک تو شما میدونین حالا میگیم که برخی خوانندام که بچه نوندای عزیزم که نمیدونن اینو حالا آگاه بشن که اصلا روز جهانی کارگر که الان هست بله همه جهان این روز روز جهانی کارگره به جز ایالات متحده بله به دلیلی که این روز کشتار اون کارگران موترز به دست دولت آمریکا است بله کارگران مدن شیکاگو بله، هم یا که بله. اینا رو کشتار کردن و اون شد روز جهانی کارگر حالا همه جهان میگیرن الا خود بله. آمریکا حتی خود آمریکا برخی از نهادهای مدنی بله. میگن ولی دولت آمریکا به رسمیت نمیشناسه به عنوان نسان. در واقع و هیچ وقتم به بقع... عنوان جن... درسته که حالا رئیس جمهورهای اون دوره <تصفح> وزرای اون دوره در واقع همه همردند و رفتن ولی دولت آمریکا به عنوان یک استیت عنوان در واقعشون که حوره بینم بلال نظریه ثبات دولت ها رو داریم یعنی هر دولت مثلا 200 سال پیش چیزی انجام داده مثلا درست الان جمهوری اسلامی قبلا مثلا پهلوی بوده قبلا قاجاری بوده ولی دولت استیت ثبات این حکومت گاورنمنت که تغییر پیدا میکنه حالا اینم زدن زیرش حالا کنگره داره میگه اگه هسته بشه اوباما با ایران ما بعدش می‌ذاریمش کنار <تصفح> البته خوب <تصفح> <همی> هم <تصفح> و همون بی‌اخلاقی اخلاقی دادن دقیقاً بله همون لذا میبینیم که این ستا در واقع اون دوتا عامل منفی که داروینیسم ایجاد کرد توی هم تمد... کل تمدن بشری و اون دوتایی که تو برنامه قبلی این دومی یعنی سرمایی داری که اینکه که در واقع میاد انسانها رو ذره در واقع از بین میبره زره زر در واقع این تنازع بقایی که اون موقع خب اون اثر منفی که ما توی هیتلر داریم اون یه جا میکشت بل. مثلا ما همون مسئله باعثه است و یه چیز دودش پنجاه یا شش میلیون انسان تو همون جنگ جهانی از بین برن ولی این سرمایداری به این شکل لجام گسیخته ذره ذره انسان رو میکشه و در این شخصیت انسان رو میکشه انسان ها را میده بله به های عمرشونه. بله به عمرشونه. بله عمرشونه خود در واقع مارکس میگه میگه که وقتی یه کارگری در واقع کار میکنه برای یک سرمایدار در واقع طول عمرشو داره میفروشه ساعتهای عمرشو داره میفروشه بهش میگن درآمد در واقع خطی شما مثلا به اندازی وقتی که میذاری برای اون در واقع کار فرما داری براش کار میکنی و عمرت میشی به جای عمرت داری پول میگیری مثلا همین الان حتی شما تو خود کشور ما هم متاسفانه کوغی کارگر مثلا ما 600000 تومان یک ساعت عمرشو برای یه بستنی حسیدی داره میفروشه یک ساعت عمرشو جهل پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که یک لحظه تفکر برابر 70 سال عبادت هستش اه. و اون لحظه و اون عمری که خداوند در اختیار انسان قرار اینجوری با این سیستمی که به وجود اومده این سیستم سرمایه‌داری که به وجود اومده با درآمد خطی که تحمل میکنه بر 90 درصد 90 درصد انسان انسان‌ها این 95 درصد برای اون 5 درصد بالا دارن کار میکنه اون بالا چی اون بالا چیزی جز پول ندارن چیزی غیره و با, با پوله که براشون پول میاره یعنی ابتکاری از خودشون انجام نمیدن کار یدی در واقع انجام نمیدن البته میگم همین سرمایه‌داری تا, تا قبل از کینز خب از این بدتر بوده ولی خب بعد از کینز یه سری امتیازاتی دادن مثلا مثل حق بیمه مثل عرض به حضورتون که تا حدی شد ولی باز هم شما میدید هنوز که هنوزه باز هم متاسفانه کارگران توی غرب هم کارگران صنعتی توی غربم به قول هربرت مارکوزه بورژوا زده شدن چرا که اومدن با برجوازی در واقع یکی شدن از سود کارخونه ها تا اون دیگه میگیره ولی باز هم دارن عمرشون دارن میفروشن و عملاً از اون فضا رها نمیشن دکتر درسته هرگز رها نمیشن یعنی ببینید تا همین چند دهه پیش زناشون این برد. همه ادعا نجات پرستی داری که دیگه هنوز که بندرایی که بردداری میکردن هم این کشتیا رو برو بیاوییم سیاپوست بکش 100 تا 200 میلیون آمار درستی در دست نیست از 100 تا 200 میلیون سرخپوست بعد کشتار فقط 100 هزار سرخپوست باقی موندن که بعد اونا هم تو اردوگاه کم به بیماری دچار کردن و کشتن به قول زنده‌یاد دکتر می گفت حتی همین الان تو آمریکا والدین هستن که رعایت میکنن که بچهشون رو به مدارسی نفرستن که اونجا کودکان سیاه پوست هم هستن بله. اما اینجا تو ایران همین الان شما هم تو اتوبوس وقتی میشینین کنارریتون سیاپوسست نیستی نه اصلا تنها چیزی که بهش فکر نمیکنین این موضوع بله با اینه که به قول فرمای شما یک چیزایی رو از دست دادیم آلوده شدیم خیلی چیزارو رو بدونی که بدونیم خودمون چیم از اونا گرفتیم اما هنوزم ذاتمون بله اونطوری باشه بله خب نخواهش این هم نکته خیلی خوبی بود لذا بحثی که خود خود غرب هم مطرح هستش چیزی که غربی ها در واقع کنار هم قرارداد قرارداد کانتراکت و قانون یا لیگال بوده چون منشأ هم نظریه قرارداد اجتماعی از هابز چیه هابز متقوت که انسان گرگ انسانه لازم چیکار کنیم بجا که همدیگر رو بدریم با هم یه قرارداد ببندیم یه قرارداد ببندیم با هم دیگه زندگی کنیم بر اساس یه چیزی به اسم لیگال قانون قانون بذاریم چیزی که ما فراموش بله. بله. کردیم بعد تلاش کردیم از اونا دوباره از دو دوباره بعد از اونها بگیریم متاسفانه, متاسفانه. متاسفانه. بل اون نظریهایی که شما در واقع برد. هست که اینجا فکر دیگه شما این باره وارد بحث دکتر میدونه که ما در فرهنگ ایرانی ما تاریخ ایران رو جوانان نوگرایی که امروز هستن خوشبختانه تاریخ ایران رو دیگه از ماد و هخامنشی که اروپاییا برامون صورت بندی کردن در نظر نمیگیرن نمی از پیشدادی و کیانی در نظر میگیرن درست پیشدادی یا به قولی داته که در لفظ لاتینش به میگن پاراداتا پرهداته پره الان هم هنوز هم در های غربی ایران هست فره شده و در انگلیسی هم که لاتین هم که می‌دونیم که پره یا پریمیر نخستین اولیه نخستین. که همین اتفاقا تو این بحث دروینم اون نخستی ها که بهشون اشاره کردیم پریمیر ها نخستی ها یعنی نیاهای نخستین انسان پرداتا پرداتا یا داده یا داد یا قانون پرداده یا پرداد یا پیش داد یعنی نخستین قانون نخستین قانون یعنی دولت در ایران دولت مداری در ایران با پیشدادیان آغاز میشه با پرداته با نخستین قانون آغاز میشه دقیقا. و ببینید ما چطوری تاریخمون آغاز میشه و بعد متاسفانه در این سیری که داشتیم امروز بعد دوران استعمار به جایی رسیدیم که به شما ما گمان میکنیم خیلی چیزها رو از اون ورحت من نداشتیم و گرفتیم اصلا قبل از شروع این بحثتون چون من بازم یه حاشی خدمت همهانا بگم بنی این که مثلا گفته میشه که اون تاریخ رسمی که به ما گفته شده حالا خدا بیامرزه مرحوم پیرنیا رو به خاطر شای شاید اگه نبود تاریخ رو از همون 1400 سال پیش می مگه شما مازم... اگه 80 سال پیش بودین مگه غیر این میگفتین مگه خیلی هم نوگرا بود خدا تو زمان خودش همون چیزی که بود خدا خیرش بود. بود. بود اما نگفت تا ابد هر من گفتم همونه دقیقاً نگوشن چیزی رو نگفت شما نگاه کنید اما دون مثلا شما نگاه کنید قبل از مادها ها یعنی قبل از مات هیچ خبری نبوده من فقط یه مثال عادی میزنم خیلی همه فهم که همه بفهمن که اصلا چقدر نمیتونه منطقی باشه که مثلا ما بپازیم قبل از مادها هیچ خبری نبوده دیران. ببینید در زمان هخامنشیان خصوصا در زمان حمله ای که خشایارشاه داشته حالا یه اغراق هایی میشه ولی حداقل اون موقع ما یک چیز حروده یک یکصد هزار سوار ما داشتیم توی آرت شه خامنهش حداقل. ببینید شما فقط کافیه بفهمینید یکصد هزار سوار یکصد هزار تا چی میخواد؟ اسب میخواد. این یکصد هزار تا آس چهار تا پا داره چهار تا نعل میخواد؟ چهارصد هزار تا نعل میخواد؟ صنعت زوپ فلز. این یکصد هزار تا سوار هر کدومش حداقل یکصد هزار تا شمشیر میخوان. حداقل یکصد هزار تا زره میخوان. حداقل یکصد هزار تا نیزه میخوان. اونها بر روان انسان شناسی و سیر تاریخی آشنایی دارم میدونن که برای ساخته شدن چنین تمدنی 5000 سال هم کمه یعنی یه تمدنی که معتقدن که دفعی به وجود اومده یعنی آریایی‌ها سوار قطار شدن از اون بالا اومدن پایین رو پیاده شدن و تخت جمشید و ساخته ساخت ساخت شدن هخامنشیان سرخ... ما رو گرفت این واقعا چیزها خیلی میشه به فکر <تصفح> انسان رو ها؟ یعنی میگن از 835 پیش از میلاد جنگ بیت هابان بیت هابان بان. بیت هان بیت هان دیگه یه هایی تغییر کرد و آشویرهای اینا رو دیدن و اینا اونها رو دیدن و من نمیدونم حالا من میگم که اون میگه تو چرا باور میکنی بلد دقیقا میدونم او به یک بقاسیدی گفته آخه تاریخ دان دانشگاه تهرانی که نشستی اینجا آخه تو چرا باور میکنی دقیقا بله از ارز کنم حضورتون که لذا من ارز میکنم با پنج من میگم یا پنج تا هزار ساختن چنین تمدنی، صنعت زب فلز، صنعت مثلا حتی رام کردن مثلا برخی حیوانات اهلی در کنار هم قرار دادن این همه انسان ها. شما این اولیه که به این سادگی کنار هم قرار نمی گیرن که ما به این سادگی نمی تونیم اینها رو در واقع بپذیریم لذا اساتید تاریخ ما هم باید خوصدن دانشجویان رشته تاریخ دانشویان رشته های در های باستانشناسی باید روی این مسئله خیلی حساسیت بعد نشون بدن که به این سادگی هر چیز رو نپذیرن من باشون بطل... برخورد دارم آقای دکتر ما که امیدمون ازشون بریدیم حالا شما اگه هنوز امیدی دارین نخ... نه امیدوارم که این نسلی <تصفح> که در واقع میاد به این سادگی هر چیز رو نپذیره میدونید تو تاریخ آخه سه تا بردار داره تاریخ یه بردار زمان داره یه بردار مکان داره بل. این بردار زمان و مکان رو شما هر جا میتونی به کار برید ولی یه بردار دیگه یک سوم سوامده مثل منطق تاریخ مثلا من یه گزاری تاریخی مثلا ارز میکنم در سال مثلا هزار و دو هزار و سال پیش از میلاد کورش کبیر از طریق وایبر با ماندانا مثلا چت میکرد برای مثال ارز کردم دیگه مثلا. حالا شما حساب بکنید زمان دار این بل زمان حخامشه مکان هم داره ولی آیا تو اون دوره ما وایبر داشتیم منطق منطق نداره وقتی که یک چیز منطقم که البته یک زبان چیز فارسی خیلی فکر می‌کنن عربیه منطق یک کلمه فارسیه بلد. من تاگ هستش من تاگی گرفته شده با, با گاف بله من تاگ من در زبان در زبان پهلوی قدیم به منی خرد بود تاگ هم همون تاج تاج ترازو بله بله من تاگ یعنی ترازوی خرد منطق یعنی ترازوی خرده از نطق عربی نمیاد این ای ای ای ای ای ای من هم مطمئن. که در زبان ایرانی به معنی اندیشه هست اندیشه هستش خیرد. من به معنی خرد همون مر هم در واقع اندیشه هستش لذا باید نسل جوان و اون نسلی که در واقع میاد اون چارچوب ها ب... چار... اون چیزی که باعث میشه یک تمدنی در قحقرا فرو بده یه چارچوبی که براش ساختن رو ادامه بده لازم از اون چارچوب ها باید بیان بیرون و برای خودشون یه چارچوب دیگه بسازن نه اینکه با... تمدن از بیرون نمیشه نابود بلد. کرد بلکه از درون با در وسط فرمان شما من بریدم اسخاهی میکنم اسد فرمانم میفرماین که قسمت دهم این برنامه داره به پایان میرسه ده... فرمایشتون نگر دارین در آغاز قسمت یازدهم در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز ممنونیم از حضورتون و همراهیتون با قسمت دهم برنامه روختا تا آغاز قسمت 11 شما رو به خداوند متعال می‌سپارم خدا یار و نگهدار